عزیزان به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. اگه این اولین جلسی شماست که به ما ملحق شدید، خوشحالم که به ما پیوستید. چون در این کلاسا ما تک تک کتاب های کتاب مقدس رو معرفی می مرور می و خلاصه رو به شما عزیزان می و هر کدوم از این کتاب ها رو در عرصه های عملی زندگیمون به کار میبریم. ما بررسی خودمون رو از کتاب پیدایش شروع کردیم و تقریباً بررسی تمام کتاب کتاب مقدس رو تموم کردیم. بررسی کتاب مقدس به همراه شما برای من بسیار لذت بخش بود. ما کتاب یعقوب رو بررسی می کنیم که رسالی عملی هست که به منابع گناه کالبوتش کافی، گناه فریبنده بودن، گناه و مراحل گناه و محکومیت نهایی گناه می‌پردازه. در درس امروز، معلممون حقیقت شگفتانگیز رو به ما تعلیم میده. چاری گناه رو با هم در کنار معلم عزیزمون گوش میکنیم. حالا به نامی یعقوب رسیدیم که در اواخر عهد جدید قرار داره. در بررسی اولمون از نامه یعقوب ملاحظه کردید که یعقوب در مورد منابع و مراحل گناه و نجات چه چیزهایی میگفت. در درس امروز ملاحظه خواهید کرد که یعقوب در مورد منابع و مراحل تقدیس شدن چه چیزهایی خواهد گفت. به چیزی که او در مورد تقدیس میگه گوش کنید کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمیاندازد انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد در نتیجه شهوات آبستن می شود و گناه را تولید میکند و وقتی گناه کاملا رشد کرد باعث مرگ می شود ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید تمام های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشید. در عهد جدید سه نفر هستند که به اونها یعقوب می گیم. دو نفر از اونها جوز رسولان بودند. یعقوب پسر زبدی و یعقوب پسر الیفاس و بعد یعقوبی هست که برادر ناتنی زمینی ایسای مسیح هست و او کسی که رساله یعقوب رو نوشته که ما الان در حال بررسی اون هستیم ما دیدیم که این یعقوب خیلی عملگراه هست و به منشه چیزها بیشتر علاق منده. در جمله نخستین باب یک او میخواد که ما چیزهایی در مورد منابع و طوفان ها یا امتحانات یعنی مشکلاتی که همه ما با اون مواجه هستیم بدونیم یعقوب به ما میگه طوفان های ما میتونه برای ما خوب باشه مخصوصا اگر ما از خداوند حکمت و عطیهای دریافت کردیم که با اون به طوفان ها واکنش نشون بدیم اما بعد در باب یک یعقوب همینطور به ما میگه منابع و مراحل گناه و وسوسه شدن برای گناه چیه یعقوب به ما میگه که خدا منبع وسوسه برای گناه نیست و هیچ ارتباطی با زرافت و فریبندگی که منتهی به گناه میشه نداره بنابراین یعقوب میخواد که ما به وضوح فرق بین امتحانات که سبب رشد روحانی ما میشن و وسوسه ها رو که منجر به گناه و نابودی زندگی روحانی ما میشن درد کنیم اگر باب یک رو مطالعه کنید خواهید دید یعقوب چیزی رو شرح میده که میتونیم بهش کالبوت شکافی گناه بگیم یعقوب در مورد منابع گناه با ما صحبت میکنه و در مورد ظرافت های گناه و فریبندگی های گناه در مورد مراحل گناه و در مورد چیزی که ما بهش مجازات گناه میگیم صحبت میکنه. گناه همیشه مزد خودش رو میپردازه. اقتصاد این جهان ممکنه در نوسان باشه اما مزد گناه همیشه ثابت هست بعد از اینکه یعقوب خبرهای بد رو به ما یادآوری میکنه که مزد گناه همیشه مرگ هست بعد از اون خبرهای خوب رو هم به ما میگه که راه حلی برای گناه وجود داره. علاوه یه چیزی که یعقوب درباره طوفان ها به ما میگه که همه ما باید با اونها مواجه بشیم حقیقتی که همه ما باید در باب اول یعقوب با آن چنگ بزنیم، چیزی که من دوست دارم بهش کالبوت شکافی گناه بگم. یعقوب به ما میگه که گناه با دیدن چیزی شروع میشه که به این حرص یا تمع میگیم. مانند بسیاری از مردم در کتاب مقدس شما میبینید، تمع می کنید، بر میدارید و بعد مرتکب گناه آشکار میشید. بنابراین به گفته یعقوب وقتی شما چیزی رو میبینید و اون رو میخواید، هنوز گناه ه اما بعد از این که شما چیزی رو که میخواید دیدید و به این واقعیت فکر کردید که اون رو میخواید، این چیزیه که یعقوب به اون هوس میگه و بعد شما اون هوس رو پرورش میدید و در این نقطه هنوز هم شما مرتکب گناه نشدید، در واقع هنوز وسوسه نشدید. یعقوب به ما میگه که اگر فکری به حال هوستون برای اون طعمه که خیلی براتون جذاب پس نکنید، بعد روزی خواهد رسید که با اون وسوسه مواجه خواهید شد و بعد علنا مرتکب گناه خواهید شد. شما عملا زمانی مرتکب گناه میشید که تسلیم وسوسه میشید. بعد عواقب گناهتون یا مزد گناهتون همیشه مرک خواهد بود. یعقوب میخواد ما این مراحل رو بفهمیم به همون دلیل که برادر ناتنی او ایسا می میخواست که ما این مراحل رو بفهمیم. در معیزه سر که یعقوب به موازات اون حرکت میکنه عیسی گفته اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت بزنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است. خیلی از مردم این تعلیم عیسی را درست درک نمیکنند. اونها معتقدند که عیسی تعلیم میده که این یکی به اندازه ی دیگری بد هست. آیا عیسی این فکر رو تعلیم میداد که افکار شهوت آلود به اندازه ی ارتکاب زنا بد هست؟ عیسی اصلاً چنین چیزی تعلیم نداده. عیسی تعلیم میداد که اگر واقعاً نمی‌خواهید مرتکب به گناه زنا شوید، اون موقع در نبرد زمانی پیروز بشید که زنا فقط یک نگاه شهوت آلود است. عیسی تعلیم میداد که در اون مرحله هست که شما برنده یا بازنده میشید نه در مرحله ای که با وسوسه مواجه شده اید بسیاری از مردم امروزه هستند که میتونند حقیقت این تعلیم را ثابت کنند در مراکز خرید امروزه در دنیای زندگی روزمره بسیاری از مردم مانند قایقی هستند که بادبان هایشان طور شده که باد از هر سو به آن سو خواهند رفت اگر بتوانند زنا خواهند کرد پس این نشون میده که بسیاری از مردم هستند که اگر شریکی با طرز فکر مشترک و با بادبانهایی همسو پیدا کنند مرتکب زنا خواهند شد. اگر شما یاد نگرفتید که با متوقف کردن این گناه در سرچشمه اون زمانی که فقط نگاهی شهوت آلود هست قبل از اینکه که وسوسه و گناه زنا سراغتون بیاد این عرصه از زندگیتون رو کنترل کنید اون وقت خودتون رو در فریبندگی و جذابیت مراحل این نوع گناه بی خواهید یافت دلیلی که عیسی در موعظه سر این تعلیم رو داد و دلیلی که یعقوب همون چیز رو اینجا تعلیم میده اینه که تعالیم اونها تنها راه حل این نو گناه هستند یعقوب تعالیمش رو در باب یک با این خبر خوش به پایان میبره که راه حلی برای این نو مشکل گناه وجود داره هم عیسی و هم یعقوب تعلیم میدن که راه حل گناهان جنسی کلام خدا هست یعقوب به ما میگه که نقشه خدا این هست که ما بتونیم توسط کلام خدا از نو متولد بشیم. ما میتونیم تولد دوباره رو تجربه کنیم و به وسیله تجربه تولد تازه ما میتونیم راه حل مشکل گناه رو تجربه کنیم. یعقوب هم این رو همونطور مطرح میکنه که پتروس مطرح کرده. در نامه اول پتروس، پتروس به ما میگه که کلام خدا مانند بزری فساد ناپذیر هست. کلمه یونانی که پتروس برای بزر به کار برده، عملاً کلمه ی اسپرم هست. وقتی که اون تخم غیرفانی در قلب ایمان کاشته میشه اون مانند اسپرمیه که با اوولی در زندگی انسان تلقیح میشه در زندگی انسان شما یک اسپرم و یک اوول دارید و این دو با هم ترکیب میشن و لقاه صورت میگیره بعد نه ماه زندگی جنینی هست و به دنبال اون بحران وضع حمل و بعد از تولد رشد و تکامل صورت میگیره پتروس این چیزها رو در آخرین آیات باب که اولین رساله اش با مادر میون میذاره یعقوب هم همون چیزها رو در آخرین آیات باب یک رساله‌اش با ما در میون میذاره و به ما میگه که کلام خدا معموری برای روح القدس هست یا نماینده خدا هست که عملا میتونه درون قلب شما زندگی خلق کنه و به شما تجربه تولد دوباره رو بده. تولد دوباره به شما قدرت میده که فراتر از گناه زندگی کنید. آخرین آیات باب یک نامه یعقوب رو مطالعه کنید و ببینید که آیا به چیزی که یعقوب به ما میگه باور دارید؟ در پایان تعالیمش در باب یک در رابطه با خبرهای بد در مورد منابع و مراحل گناه، یعقوب اخبار خوبی از مراحل و منابع نجات را هم با ما در میون میذاره. بعد از اینکه یعقوب اخبار خوش رو به ما معرفی میکنه که کلام خدا جایی هست که ما میتونیم راحل گناه رو پیدا کنیم، اون نصیحت قدرتمندی به ما میکنه که تا باب دو ادامه پیدا میکنه و مربوط به اهمیت اطاعت از کلام خدا هست. این تعبیر و خلاصه تفسیر من از این آیات پایانی باب یک یعقوب هست. از اونجای که کلام خدا تخم یا منبع تولد دوباره ما هست با توجه به چیزی که او در ما ساخته پس برادران عزیز. هر کسی در گوش کردن تند و در گفتن کند و در خشم آهسته باشد. زیرا خشم انسان هرگز ای برای دستیابی به نیکویی حقیقی خدا نیست. پس هر ناخالصی و شرارتی که زندگی دیگران را آزار میده از خود دور کنید و فروتنانه پیغام خدا را که در دلهای شما کاشته شده بپذیرید چون میتواند جان شما را نجات دهد از شما درخواست میکنم فقط شنونده کلام نباشید بلکه اون را به کار بگیرید در غیر این صورت فقط خودتون را فریب خواهید داد کسی که فقط میشنود و کاری انجام نمیدهد و به آن عمل نمی کند مانند کسی هست که در آینه به خود می نگرد و خود را در آن می بیند اما تا از مقابل آینه دور می شود سیمای خود را پراموش می کند. کامل یعنی کلام خدا به کلام آزادی نگاه میکنه و این رو برای خود به صورت عادت در میاره کسی نیست که می بیند و فراموش می کند او به شریعت عمل میکنه و شادی حقیقی به دست میاره. در این متن با این سخنان آشنا تاکید شده. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. بعد از اینکه گفته شد که کلام خدا وسیله ای هست که اگر به اون پاسخ شایسته بدیم میتونه تولد تازه در ما به وجود بیاره، یعوب نصیحت بزرگی به ما میکنه. در رابطه با اهمیت اطاعت از کلام خدا، این نصیحت در قالب تمثیل بسیار زیبایی اومده. کلام خدا مانند آینه هست. یکی از اولین کارهایی که هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب انجام میدید، نگاه کردن به آینه هست چرا به آینه نگاه میکنید شما به آینه نگاه میکنید چون که خواهید ببینید قیافتون چقدر ناشفته هست میخواهید ببینید برای رفع این ناشفتگی چه باید بکنید من وقتی صبح بیدار میشم و به آینه نگاه میکنم موهام مانند ریشه های درختی هست که از خاک بیرون اومده باشه تا حالا درختی رو دیدید که طوفان اون رو از جاش درآورده باشه موهای من صبحها دقیقا مثل اونه حالا وقتی من صبح با آینه نگاه میکنم و میبینم موهام مثل درخت واژگون شده هست به چانم نگاه میکنم و می بینم باید اصلاح کنم و دوش بگیرم. آیا احمقانه نیست که وقتی من قیافم رو دیدم هیچ کاری برای اصلاحش نکنم؟ یعقوب به ما میگه که وقتی کلام رو میخونیم دقیقا مثل اینه که به آینه الهامی خدا نگاه میکنیم و اگر کاری برای اصلاح وضع خودمون نکنیم همونقدر حماقت می کنیم که اگر صبح اصلاح نکنیم و دوش نگیریم. این تمثیل زیبایی هست که یعقوب انتخاب میکنه و با این کلمات به تصویر میکشه. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. وقتی یعقوب بر اهمیت اطاعت و بکارگیری کلام خدا در زندگی هامون تحکید میکنه، باز هم در راستای تعالیم برادرش عیسی حرکت میکنه. در تمثیل کشاورز عیسی به ما گفت که وقتی شما کلام خدا را تعلیم میدید و یا به کلام خدا مراجعه می میکنید که چیزی از اون برای خودتون بدست بیارید. مثل این هست که کشاورزی بزر میپاشه. عیسی گفت که وقتی کشاورز بزر میپاشه، اون بذر هیچ سماری نخواهد داشت تا زمانی که بر خاک بالای سرش غلبه نکنه، تا زمانی که از موانعی مثل سنگها و خاک و شنی که روی بذر قرار گرفته عبور نکنه، اون بذر هیچ سماری نخواهد آورد عیسی به ما نشون داد که چطور اون مثل رو به کار بگیریم. او به ما گفت که وقتی کلام خدا به مردم عرضه میشه، مادامی که کلام در افکار اونها نفوذ نکنه ثمری نخواهد داشت وقتی مردم کتاب مقدس رو که به اونها تعلیم داده میشه درک نمی کنن، کلام خدا مانند بذری هست که روی زمینی میفته که با فشرده شدن توسط رفت آمد مردم سفت شده عیسی همینطور این کاربورد رو نشون داد که هیچ ثمری نخواهد بود تا زمانی که بزر کلام خدا بر مرکز اراده شخص نفوذ کنه این تفسیر و کاربرد او از بذری بود که بر زمین شخم خورده و آماده میوفتد. اینجا در رساله یعقوب هم او اساسا همون چیز رو تعلیم میده. یعقوب به ما میگه که کلام خدا مثل آینه هست وقتی شما به آینه نگاه می‌کنید و آینه های شما رو به شما نشون میده، آینه وظیفه خودش رو انجام داده. وظیفه آینه این هست که ایرادات و های شما رو نشون بده تا شما بتونید اصلاحات لازم رو به عمل بیارید. وقتی شما به آینه کامل خدا نگاه می‌کنید، یکی از وظایف اون آینه یا کلام خدا اینه که به شما قانون گناه و مرگ رو در زندگیتون نشون بده. دلیلی که چرا کلام خدا شما رو به طور واقعی به خودتون نشون میده اینه که کاری در این مورد انجام بدید. یعقوب اینجا به ما میگه که اگر ما به کلام خدا مانند آین واکنش نشون بدیم خواهیم فهمید که کلام خدا زنده است نویسنده ی کتاب ابرانیان به ما میگه که کلام خدا زنده است. سری و قدرتمنده نویسنده ابرانیان همینطور به ما میگه کلام خدا مانند شمشیری دو هست که میتونه چیزهای روحانی رو از نفسانی جدا کنه کلام خدا میتونه اعماق وجود شما رو لمس کنه و با قلبتون صحبت کنه کلام خدا وسیله برای روح القدس هست که اگر واکنش شایسته به اون نشون بدید میتونه با اون معجزه بکنه و در زندگی شما تولد دوباره به وجود بیاره به این دلیل که یعقوب ما رو تشویق میکنه که به کلام خدا واکنش درست نشون بدیم. من شما رو تشویق میکنم اولا عادت کنید که هر روز به آینه کلام مقدس خدا نگاه کنید. یک نوازنده ویولون بدون کوک کردن سازش شروع به نواختن قطعه ای نمیکنه. ما قبل از اینکه شروع به نواختن روزانه بکنیم، باید سازمون رو کوک کنیم. وقتی این کار رو بکنید، وقتی کلام خدا بر نقصهای های شما تمرکز میکنه، کاری در مورد چیزی که کلام خدا به شما نشون میده بکنید. در مورد چیزی که کلام خدا به شما نشون میده کاری بکنید. کلام خدا قدرت و نیرویی نخواهد بود که خدا به زور وارد زندگی شما بکنه تا زمانی که خودتون اون رو بپذیرید و در زندگی روزمرتون از اون اطاعت کنید بعد از در درمیون گذاشتن بعضی حقایق عمیق درباره امتحانات و منابع های گناه با ما یعقوب به ما مبحث زیبایی در مورد ظاهر چیزها میده مانند برادرش عیسی یعقوب هم علاقمند به منابع پشت ظاهر چیزها هست که مهمترین مسائل زندگی های ما هستند. یعقوب در ادامه درباره مذهب دروغین و مذهب حقیقی صحبت میکنه. یعقوب میگه کسی که ادعا میکنه شریعتی هست اما نیازهای بیو زنان و یتیمان اطرافش رو برآورده نمیکنه، مذهب اون مرد ظاهری هست. به قول یعقوب بیوه بودن و یتیم بودن یک درد هست. ما همیشه بیوه زنان و یتیمانی رو در اطرافمون داریم. اما در قرن بیست و یکم به خاطر طلاق و جدایی، ما با یک اپیدمی بیوه و یتیم در زندگی هامون مواجه هستیم. به علاوه درد از دست دادن همسر، پدر یا مادر، در مورد بیوه ها و یتیمانی که توسط طلاق و جدایی بیوه و یتیم شدن، درد ترد شدگی هم وجود داره. این وضعیت باید توسط کلیساهای مسیح به عنوان کشزارهایی که آماده ی هستن ملاحظه بشه. تا کنون نیازی بزرگتر از امروز برای نمک و نور پیروان مسیح وجود نداشته. پیروان راستین مسیح باید برای جانهای تنها و ترد شده و فرزندان آنها در کلیساهای امروزی نور و نمک باشند. من فرزند های زیادی رو دیدم. کسانی که توانایی پذیرفتن فرزندی رو دارند به پرورشگاه ها میرن و اجازه پیدا میکنند که بعد از طی مراحل اداری فرزندی رو به فرزند خاندگ روزی وقتی در پرورشگاه بودم و با بچه ها بازی می کردم، پسر کوچکی به من نگاه کرد و پرسید: "آقا شما توی خونه زندگی میکنید؟ این قلب من منو به شدت تحت تأثیر قرار داد، چون که او هرگز توی خونه زندگی نکرده بود. او در یک موسسه زندگی می کرد و امیدش این بود که روزی کسی بیاد و با او توپ بازی بکنه و آخر سر او را با خودش ببره که توی یک خونه زندگی کنه. یعقوب اون چیزی رو که اون بچه تجربه می کرد، یک درد توصیف کرده یعقوب به ما گفته اگر مذهب ما کاری در مورد یتیمان و بیوه زنان نکنه و امروز ما میتونیم زنان و فرزندان طلاق رو هم به اینها اضافه بکنیم اون موقع مذهب ما ظاهری هست من فکر میکنم این چالش بزرگی هست آیا میبینید که یعقوب چقدر عملگراه هست؟ یعقوب بر اهمیت عمل کردن به کلام تحکید میکنه و میگه نباید فقط شنونده کلام بود در باب دو یعقوب وارد بحثی میشه که ما میتونیم بهش چهره غیر واقعی و چهره واقعی بگیم. او میگه وقتی ما به ظاهر افراد نگاه میکنیم مرتکب گناه میشیم. کلمه ظاهر شخص به معنی قیافه و ماسک هست. کلمه شخص مربوط به ظاهر ما هست. یعقوب میگه که اگر کسی وارد کلیسای ما میشه و شما بر اساس ظاهر اونها به اونها ارزش قائل میشید، شما به اشخاص احترام قائل میشید. فرض کنید شخصی وارد کلیسای شما بشه که کت و شلوار بسیار گران قیمتی پوشیده و با لیموزینی همراه با راننده به کلیسا اومده. تصور کنید شما هر کاری که از دستتون برمیاد برای جلب رضایت او انجام بدید و نهایت سعیتون رو بکنید که همه بدونن او اون روز به کلیسای شما اومده. و بعد تصور کنید مردی با لباس کار وارد کلیسای شما میشه، جورابی به پا نداره و پیراهن کثیفی پوشیده. فقط صندلی در یک گوشه به او نشون میدید و امیدوار هستید که کسی او رو نبینه. به گفته یعقوب وقتی این کار رو انجام میدید مرتکب گناه میشید. شما مرتکب گناه شخص پرستی میشید. احترام به اشخاص ارزش نهادن بر اساس ظاهر اونها، ظاهر اونها هر طور که هست گناهه. چون خدا به مردم نسبت به ظاهر اونها ارزش نمیده بلکه بر اساس قلب اونها به اونها ارزش میده. کلام خدا، در اول سموئیل میگه اما خداوند به سموئیل گفت به چهرش و بلندی قامتش نظر من ما زیرا او را رد کردم چون که خداوند مثل انسان نمینگرد زیرا که انسان به ظاهر مینگرد و خداوند به دل مینگرد قلب جاییه که خدا ارزش شخص را تعیین میکنه یعقوب همینطور نمایی از کلیسای کاذب و کلیسای حقیقی رو به ما نشون میده و به گناه احترام به شخص اشاره میکنه بعد به ایمان ساختگی اشاره میکنه و به ایمان حقیقی او این رو به یکی از متناقض ترین بخش های نامه میرسونه او این رو به یکی از متناقض ترین بخش های نامه اش میرسونه این متن هیرتنگیزی هست در باب دو آیه 14 تا 26 اونجایی که یعقوب موکدا میگه چیزی به نام ایمان بدون عمل نداری وقتی که یعقوب موضوعش رو در مورد این متن جمبندی میکنه این که ببینید انسان به وسیله کاری که انجام میده و همینطور چیزی که باور داره نجات پیدا میکنه راها به فاحشه نمونه ای از این بود او نجات پیدا کرد به خاطر کاری که انجام داد و جاسوسان اسرائیل رو مخفی کرد و اونها رو به سلامت روانه کرد خب اتفاقا ابراهیم به خدا اعتماد کرد و خدا او رو نیک اعلام کرد و او رو دوست خودش خطاب کرد چون او پسرش اسحاق رو به خدا تقدیم کرد ببینید ابراهیم به خدا اعتماد کرد تا جایی که حاضر بود هر کاری که خدا از او میخواد انجام بده. ایمان او با کاری که انجام داد کامل شد. با اعمالش، با اعمال نیکش. این متن در یعقوب بسیار بحث برانگیز هست بعضی از مردم معتقدند که این متن مقایر تعالیم پولس هست مارتین لوتر گفته که رساله یعقوب ای پوشالی هست و نباید در کتاب مقدس باشه. دیگران هم بودند که معتقد بودند رساله یعقوب نباید از ابتدا در شورای کتاب مقدس به عنوان کتابی معتبر مورد پذیرش قرار می‌گرفت. به خاطر متنی که در باب دو نوشته شده، من مقایرتی بین آنچه که پولس نوشته و آنچه که یعقوب اینجا نوشته و آنچه که عیسی تعلیم میده نمی‌بینم. عیسی وقتی در متی شانزده تا 20 گفته از میوه‌هایشان آنها را خواهید شناخت، با یعقوب هم عقیده بوده. عیسی همینطور گفته شما باید به این دلیل که شاگردان من هستید، مسمر ثمر باشید چون که چیزی به نام شاگرد بی سمر عیسی وجود نداره. یعقوب در راستای تعالیم عیسی اینطور میگه. همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد، در خود مرده است. بلکه کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. تو ایمان داری که خدا واحد هست نیکویی میکنی، شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزن ولکن ای مرد باطل آیا خواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل هست؟ به گفته یعقوب اعمال سمرات هستند و ایمان ریشه هست اعمال میوهایی هستند که درخت ایمان به بار میاره چیزی که یعقوب اینجا میگه بسیار مهم هست بعضی ها اون رو اینطوری بیان کردن تنها ایمان میتواند نجات دهد اما ایمان نجات بخش هرگز تنها نیست من فکر میکنم این روش خوبی هست برای خلاصه کردن چیزی که یعقوب میگه ایمان همیشه همراه با اعمالی هست که ایمان رو ثابت میکنه و نشون میده که ایمان معتبر و واقعی هست پس در این رساله یعقوب در بابهای یک و دو یعقوب با ما درباره منابع و مراحل نجات صحبت میکنه برای نشان دادن اون تئوری یعقوب درباره منابع و مراحل طوفان صحبت میکنه منظور یعقوب از طوفان‌ها اون مشکلاتی هستند که وارد زندگی ما میشن و اگر ما با اون مشکلات با حکمت و فیزی که خدا به ما میده برخورد کنیم خدا میتونه از اونها برای رشد و نیکویی ما استفاده کنه بعد یعقوب درباره مراحل و منابع گناه با ما صحبت میکنه یعقوب میگه که خدا منبع وسوسه برای گناه نیست و میگه که هیچ چیز خوبی در مورد گناه وجود نداره یعقوب معتقده که شما باید بدونید گناه چطور شروع میشه و چطور کار میکنه تا اینکه بتونید راه حلی برای مشکل گناهتون پیدا کنید. او راه حلی برای مشکل گناه راه میکنه و اون راه حل نجات هست. یعقوب مراحل و منابع نجات رو نشون میده. منابع و مراحل نجات مربوط به کلام خدا، روح خدا و تولد تازه هستند. به این دلیل که یعقوب قویاً بر اهمیت خواندن کلام خدا و اطاعت از کلام خدا تاکید میکنه. وقتی یعقوب باب سه رو شروع میکنه، شما میتونید بگید او الان میخواد منابع نیروها رو نشون بده یعنی نیروهایی که میتونن ما رو نجات بدن و نیروهایی که میتونن ما رو زمین گیر بکنن یعقوب میخواد ما این نیروها رو بشناسیم به این دلیل که او خیلی به ظاهر چیزها اهمیتی نمیده یعقوب به چیزهای خارجی علاقه ای نشون نمیده یعقوب علاقمند منابع و نیروهای پشت چیزهای خارجی و بیرونی هست در باب سه، او بر منابع تمرکز میکنه نمای شخصیت یعقوب به ما مردی رو نشون میده که تاکید بسیاری بر انضباط روحانی داره که این امکان رو برای ما فراهم میکنه با ایمان گام برداریم در این باب زیبا یعقوب به ما میگه که چطور زبان چیزی هست که قطعا باید تربیت بشه او میگه که یک لگام در دهان اسب او رو کنترل میکنه یا اسبی با اون جسه توسط دهنه ای کوچک تربیت میشه و یا سکان کوچکی میتونه کشتی بزرگی رو کنترل کنه به همون ترتیب زبان هم که عضوی کوچک در دهان هست میتونه زندگی یک شخص رو کنترل کنه. یعقوب میگه تنها راهی که میتونید تربیت بشید و شخصی منضبط باشید این هست که زبانتون رو کنترل کنید. تنها راهی که میتونید زبانتون رو تربیت کنید چیزی هست که او به اون رام کردن با حکمت میگه. این جمله زیبایی هست. حکمتی که یعقوب گفته از خدا بطلبیم توسط کلام خدا به ما میرسه. مهمترین چیز در مورد اون حکمت اینه که اون رو با ملایمت بپذیریم این کتاب کوچک امثال در عهد جدید خودش به تنهایی مثالی از این عبارت زیبا هست ملایمت حکمت مطمئنم که یادتونه گفتیم فروتنی به معنی رام شدن هست قبل از اینکه اصبی رام بشه اون حیوانی قدرتمنده بعد از اینکه رام شد ضعیف نمیشه اون اسب هنوز هم حیوانی قدرتمنده بنابراین فروتنی حکمت یا ملایمت حکمت معنیش این هست که شما این حکمت رو از خدا گرفتید اما با این حکمت که از خدا گرفتید از خداوند روح القدس انزباطی میخواهید که این حکمت رو به کار بگیرید که شایسته اون انضباط باشه به عبارت دیگه وقتی حکمت خدا بر شما آشکار میشه میخواهید که زندگیتون رو تحت کنترل حکمت خدا در بیارید. همونطور که یک اسب خودش رو تحت کنترل پرورش دهنده ی اسب قرار میده این بحث زیبا یعقوب رو به بحث حکمت هدایت میکنه و برای نشان دادن این حقیقت یعقوب به ما میگه که منابعی برای حکمت وجود دارن. یعقوب میگه دو دونو حکمت وجود داره به گفته یعقوب حکمی هست که در ظاهر شبیه اینها هست لکن اگر در دل خود حسد تلخی و تعصب دارید فخر نکنید و به ضد حق دروغ نگویید. یعقوب به ما میگه که چنین حکمی حکمتی نیست که از جانب خدا بیاد. یعقوب علاقمند به منابع امور هست و میگه این حکمت از بالا نازل نمی شود بلکه دنیاوی و نفسانی و شیطانی هست. اما بعد میگه حکمت دیگری هم هست. این حکمت در ظاهر اینطور به نظر میرسه. نیکی و ادالت میوه بذرهایی هست که به دست سالحان در صلح و صفا کاشته میشه. یعقوب میگه که خدا سرچشمه این حکمت از اعلی هست. این حکمت از خدا میاد. پس او میگه دو نوع حکمت در این دنیا وجود داره. یکی از جانب خدا میاد و دیگری از جانب شیطان. بعد یعقوب چیزی درباره این حکمت که از سوی خدا میاد به ما میگه. چیزی که یعقوب به ما میگه موضوع کلی کتاب یعقوب هست یعقوب میگه دو نوع حکمت میتونه در باختی زندگی های ما کاشته بشه. او مینویسه نیکی و ادالت میوه بذرهایی هست که به دست سالحان در صلح و صفا کاشته می شود. این نه تنها موضوع کتاب یعقوب هست بلکه موضوعی که در سراسر کتاب مقدس میبینید. شما چطور میتونید در زندگیتون حکمتی که از اعلا باشه پیدا کنید یعنی اون حکمتی که یعقوب با این چیزها نشون داده یا چطور میتونید حکمتی پیدا کنید که از زندگی شما بیرون میاد جواب این سوال این هست که این یک چیز تصادفی و شانسی نیست دیر یا زود هر شخصی باید بر سر سفره عواقب به کارهای خودش بنشینه یعقوب با این شعر هم عقیده است که میگه زندگی شما بزم عواقب به شما هست. شما میتونید بذر دون و حکمت رو در باغ زندگیتون بکارید. در واقع شما بذر دون و حکمت رو در سراسر زندگیتون در باغ زندگی میکارید. در این متن یعقوب میخواد ما منابع نیروهایی که احساسات و حالات روحی ما رو کنترل میکنند درک کنیم. مثلا یعقوب میگه چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند وقتی عصبانی میشوید کار خدا و اراده خدا را انجام نمیدید. در سراسر این نامه یعقوب میخواد شما منابع نیروهایی که زندگی شما را کنترل کنند بشناسید امکان داره این نیروها بخواهند شما را زمینگیر بکنه اگر شما وسوسه میشید که گناه کنید و از عواقب اون رنج ببرید این منجر به سقوط در گناه خواهد شد و این سناریو از خدا نیست باید بدونید که چطور با گناه مقابله کنید. باید بدونید چطور راه حلی برای مشکل گناه پیدا کنید. راه حل مشکل گناه در خدا پیدا میشه. شما میتونید توسط کلام خدا به رابطه ای با خدا برسید که این امکان رو برای شما فراهم کنه که فراتر از اون نیروها قرار بگیرید که سعی دارند شما را به لحاظ روانی نابود و زمین گیر کنه. بعد یعقوب به شما نصیحت میکنه که هکمتی رو که از جانب خدا میاد تجربه کنید. که اون هم میتونه در باغچه زندگیتون کاشته بشه و ثمرات نیکویی به بار بیاره من شما رو با این سوال به چالش میکشم چه چیزی در باغچه زندگیتون میکاری آیا بذرهای حکمتی خدایی میکاری و یا بذرهای حکمت دنیایی کتاب یعقوب رو مطالعه کنید و از خدا بخواهید که به شما نشون بده چطور اونو در زندگیتون به کار بگیرید ما هر روز حکمت به دست میاریم و اونو از یکی از این دو منبع کسب میکنیم. همونطور که امروز معلممون گفت ما خودمون رو با چیزی اشباع میکنیم. اما اگه منبع کلام خدا نباشه منبع غلطی خواهد بود تا برنامه بعدی که مطالعه خودمون رو در کلام مقدس خدا ادامه میدیم، دعا میکنم که روح قدوس خدا شما رو هدایت کنه حفظ کنه و شما رو از شادی و حرامی که از آگاهی از چاری گناهتون میاد لبریز کنه